ستن باید بر و او ما و سال کجا و تن شد بر این کیه که امیر مسعود ما رو کشت اینا عبرت روزگاره در تاریخ گردیزی که خود گردیزی مثل به در دستگاه غزنویان زندگی میکرده در باره امیر مسعود سخن اومده و بعد در جنگ های که بین تاش و دیلمیان رخ داد امیر منصور در نیشابور بود بیگناه دستگیر شد او رو بردن به بخارا و روز سوار رو گاویش گاوش برای که توحیم بهش بکنه. این پهلوانزاده بیگناه ایرانی رو بردن زندان و ما هرچقدر که مدیون سامانیان است، سامانیان اوایل سامانیان اواخر به ما با برقیقت تساهل و کاهلی و بیفکری و بیخردی ایران رو دادن دست دشمنان تمام این ترکان رو اومدن حاکم بر ایران کردن هزار سال طول کشیدیم تسلط ترکان بر ایران کی کرد خود سامونیان اواخر کردن در اینجا سبکتکین من مقصود سب... سبوکرافی نمی برای که این سبک هست سبک هم یک معنی خیلی زشتی داره برخور پرنامه ای ما نیست که من بخوام معنی او بگم هر کس بخواد به دیوان لغات و طور که کاشقری مراجع کنه اونجا نوشته سبک چیه سبکتکین امیر منصور ما رو و پشتیبان فردوسی ما رو به زندان خودش فراخواند و پادشوهان هم عمرای سامانی دادن چرا به زندان خودش فراخواند؟ خطمان بر که شکنجی بیشتر بود دیگه وگر اونجا زندان بود چه فرمون؟ حالا من دو خبر رو اینجا برای شما میگم از خود تاریخ گردیزی خبر نخست این که امیر منصور را در زیقهده 389 در زندان گردیز بکشتند خبر دوم وقتی که سه بختکین ننگ چسبیده به تاریخ ایران از جهان رفت پسرش محمد در غزنی بود پادشاهی یعنی امارت رو به دست گرفت و پسر دیگرش محمود اون وقت در نشاب بود سپار بردر شکست داد خودش شد امیر خبر اینه که امیر محمود در زیغته 389 امارت خلاصان رسید به تخت نشست. این دو خبر رو من برای شما گفتم از این دو خبر چه نتیجه میگید اینا نمیتونم به حالا شاهنامه رو اینا همه صدی بودن برای شاهنامه نه آره نه مقصود این نیست دوباره حالا میگم خلاصه‌ش اگه من بپرسم برای کی که گرامی ما عزیزان جان ما اون باز... بیاند. من تو ما من اینه بیان دیشم که این دو خبر چیه حالا... حالا خلاصه تر میگم محمود در زیقه سیزادان به تخت نشاست ها. امیر مسئول در زیغرده 389 بکشتند یعنی چی؟ یعنی, یعنی محمود بزمان... تا... تا رسید به تخت فرمان داد پشتیبان شاهنامان و پشتیبان فردوسی رو بکشند این خدمتی بود که به محمود به شاهنامان ما کرد آه و درد و دریغ و افسوس و عشق نصار همه این کسانی که این هزار سال این طرق و بزرگ تاریخی رو تکرار کردن که فردوسی برای سلیه محمود میخواسته تاكيد اشينيو بپرسم یک سکی به بهدای یک تکی یک این اصلا از کودکی منم من یادم تو مدرسه این کار این خیلی منو آلم تو ما شما رفته زمه ایرانی دروخ دروغ بزرگی تاریخی به این اینا هیپنوتیزم اجتماعیه که مردم رو دنبال خودش میکشه دنبال یه دروغ برای این که... که بدن حالا برای که بهتر بسنجیم شاهنامه در سال 400 هجری به پایان رسید مفهومش اینه که هفتاد آغاز شده 370 محمود یازده ساله بوده کجا پادرشا بود کجا امیر بوده که بیاد همحت... می اصلا بچه بود هنوز نایمده بود هنوز بچه بود از سرایش شاهنامه نوزده سال گذشته که محمود اومد کجا فدوسی ما میخواست این کار بکنه فردوسی در آغاز شاهنامه میفرمد که ستم باد بر جان او ماه و سال یعنی همباره کجا برتن شاه شاخ شد بر گل شما اگر در تواریخ دوران غزنوی بخونیم میبینید که این آه فردوسی گرفت محمود رو محمود در اواخر زندگیش به مرض دغ مرد و روزها ساعتها ماها این روی یه رختخواب خواب بدونه که تکون بخوره سرش پایین بود بدونه که بتونه حرف بزنه انقدر ستم کشید و کشید و کشید تا, تا به درک وصل شد این،, این آه فردوسی ما بود که گفت و به خاطر کشتن البته کشتن میلیون ها و میلیون انسان بیکنات رو تحت عنوان دین اینا رو کشت و از جمله پشتیبان فردوسی ما رو کشت ستن باد بر جان و اون ماه و کجا برتن شاه شد برسکار بر پایان شاهنامه موقعی که روستن فرقصاد به برادرش نامه میلیسه میبینیم که داره رویدات های سال 400 رو بیان میکنه بر این سالیان 400 بگذرد که از این دوده کس تخت رو نسپرد یعنی از دودمان ایرانی خب سال 400 چه سالیه؟ سال پایان آفتن شاهنامه است از طرفی حالا دیگه محمود امیر شده در خراسان. خوب توجه کنید. بر این سالیان چهارصد ست بگذارد. کس این رود تخت. تخت را نسپرد. شبت بنده بی هنر شهریار یعنی محمود. نجات و بزرگی نیغاید بکار. یعنی یه بنده بی هنری که نه نجات داره نه بزرگی داره. این داوری فردوسی درباره محمود اینه. ننگش میمد که نام محمود رو بیاره و در آغاز و پایان شاهانامه دو بار به با او اشاره کرده در آغاز او نفرین کرده و در پایان گفته بنده است که نجات و بزرگی نداره درد و آخو ستم برما که هزار سال روان پدر نگران خودمون فردوسی رو میرنجونیم و میگیم که فردوسی شاهنامه رو برای سله. اون وقت اینا تو شاهنامه وارد کردند که فردوسی تهیید هست شد. یه این در... یه دروغ بزرگ تاریخی است برای این که شما به شرفیاب شدید به بارگاه فردوسی اون باقی که اون در... تردید نیست با خود فردوسی بوده برای که در کتابها اومده که در باغ خودشون به خاک همون باغ الانم هم اگر متعلق به هر کس باشه زندگیش به آسایش و خورمی میگذره و در به نیاز به هیچ کس نخواهد داشت تو اون باغ اگر قرار باشه کسی زندگی کنه یا یه باقی به اندازه اون باغ میتونه 50 تا گوسفند باشه باشه 5 6 باشه چند تا اسب باشه زراعت بکنه گندم از درختانش میوه هم وارد برخوردار باشه از نعمت‌های خداوند که به اون زمین و به با اون باغ میده همون با زندگی انسان رو خیلی خیلی خوب با گشاده دستی میتونه ادامه بده فردوسی هیچگاه توهی دست نبود فردوسی دستش با گسترش آسمان بود فردوسی دستش مثل دست جان ابر بود که میوارید بر روی روان ایرانیان نیازمند چه های شما اومده سوالات مختلفی دارید اینها رو مطرح میکنم به امید خدا و یه پیامی اومده من خیلی دوست دارم این رو بپرسم این پیامی خوبیه فکر میکنم هر نمایی خوبه اما پرمیت تصویری که امروز از صورت فیروزی وجود دارد آیا سندیت دارد سندیت نداره ولی استاد روانشاد صدیقی که برترین مجسمه ساز فکر ساز ایران بود این رو همانند یک چهره یک مرد خراسانی براورده اون پوشش و اون شال و اینها چهره یک مرد خراسانیه ما میتونیم بپذیریم اون که اون پیکره ای که در میدان فردوسی است میتونیم بپذیریم که فردوسی تقریبا همطور بوده همین همطور باشکوه هم همطور. اه دیگه این اومده خواستند که کلاس برای کودکان نوجوانان آیا هست که بتونن شاهنامه رو بخونن درست بخونن راهنمایی خواستند؟ من چند تا شاگردام هستن که با بچه ها شاهنامه کار می‌کنن. یکی مهرنگیز بطن که در شهر کرش این کارو میکنه و دیگران هم از فرزندان و بنیاد میخوان این قرار بکنم رو بکنم، این کاری سازمانی میخواد یه برنامه میخواد خوب با... نمیشه با یه دختری به تنهایی بره این کار بکنه و بعد چطور این کار ادامه بده بالاخره یه سازمانی با من فکر میکنم که این ندا ندایی باشه که آموز پرورش ما رو بیدار کنه تا اینکه آنها مثلا در کشورستان‌ها یا تبریزان ها این جور برنامه‌ها رو بذارن من تا به حال دو تا بودن که این برنامه ها رو در مد کوتک ها گذاشتن میگن که ما همین که داستان روستن میگیم همه بچه ها می خوبوب میشن دارن گوش میکنن و بعد مدیر مد کووت گفت حالا این بار از مولوی هم بکنین گفت ما از مولوی داستان گفتن بچه ها شلوغ کردند که از دیوار پاشو بالا میورد که از اون، اونو میزد هیچکس گوش نمیکرد. بیاین این ندای بچه های ایرانه ها. گوش کنید بچه های ایران شنامه میخوان. آخر باید یه سازمانی این کار رو سرپرستی کنه امیدوارم که همطور که بچه ها ایران این خواهش دارن کسانی که دستندرکار کارم هستن متوجه بشن این کار رو جدی بگیرن استاد جنیدی چه موقع فهمیدید شاهنامه تاریخ ایران است لطفا توضیح بفرمایید. سرباز وطن از احواس جانم فضای سربازان وطن و به ویژه احواسی که این در این زمان بیشتر از جاهایی دیگه شطن مبینه از گرد و خاک که از قرب کشور میاد من در کتاب زندگی و ماجهت آریاییان که سی و دو پیش چاف شده نشون دادم که تاریخه یعنی یکی یکی با رو با خودم میشکفتن مثلا فرض کنیم که من ایران شناس خارجی بود که به نام یوستی البانی بود که گفتود که هوشنگ یعنی کسی که خانه های خوب می سازد. خب من که عوستا و پهلاویرم آغاز کرده بودم هرچی نگاه کردم دیدم که نه هوشنگ این منیر نداره در عوستا هوو حعو شینگ هست حعو یعنی خوب شینگ یعنی خانه میشه خانه خوب خب خانه خوب چیه؟ پس کم کم منتقص شدم به این که است که افراد بشر برای خودشون خونه ساختن یا گای یعنی پدویه جان همونایی که امشب گفتم بیشتر از سی سال پیش من اینا رو گفتم و از سی دو سال پیش در کتاب زندگی ماجراجوهای آریاییان اینا به چاپ رسیده. نه. اه... امروز بر فرزندان این کشور مقدس فرخونده. امروز بر فرزندان این کشور مقدس فرخونده بود. لطفاً همزمان با تلاش برای آماده ساختن کتاب داستان ایران برای تجرو... ترجمه آن هم اقدام فرمایید. سپاس شاد باشید درود بر شما من این کار رو از چند سور پیش کردم برای که ترجمه این کتاب چون فارسی سره هست و خیلی سنگین و آهنگین هست از او هر کس بر نمیاد فقط من دو دوست سمیمی دارم که از اونا خواهش کردم یکی پروفیسور استفان پانوسی هست که ازش خواهش کردم چون او هم فارسی نویسی داره و کتابهایی که نوشته. تأثیر فرهنگ و جامعه ایرانی بر افلاطون با یک کتابم در زمینه جنبش‌های فرهنگی ایران از زمان هخامنشیان تا پایان صفویه که خودمون رو بنیادش رو چوب کردیم، استاد شناخته شده جهانیام، اما او وقت نداشت. و دوست و استاد من دکتر مونیل بیربریان که متخصص بزرگ جهانی از او هم خواهش کرده بودم، ایشون گفت من سخت مشغول چیز هستم یعنی شناسی ایران هستم. وقت نمی‌کنم، اما پار که ایشان اومد به تهران به خانه ما من داستان ایران رو یکی برگ به برگ به ایشون نشون دادم و شر دادم پس از اینکه من همه رو شهر دادم که البته از کوشش خودشم در اونجا سپاس کردم یه مدت چند تقیقه ایشون سکوت کرده بود بعد گفتم که مانویل عزیز آیا این کتاب ترجمه بکنی؟ گفت قطعا ترجمه میکنم یعنی این کار سه سال دو سال پیش انجام شده همین که در بیاد یعنی در آمادم نه همین که بندی بشه من میتونم واسیل ایمیل براش بفرستم و ایشون با اون قلم بسیار زیباش از جمله کارهایی کرده که در پیشینه دانش کیهان و زمین در ایرانویج یعنی که در... اصلا به خود من ایشون تقدیم کرده و به رهبران بنیاد بود و در بنیاد افتخار داشتیم که چاپ بکنیم شیوهی نوشتن ایشون خیلی خیلی زیبا و آراست است و امید داریم که و انگلیسی‌شون خیلی قویه امید داریم که خیلی زود این کتاب ترجمه بشه در پاسخ دوستی که پرسیدند فردوسی که بود میخواهم بگم فردوسی خونی است که هنوز در ری ایران و ایرانی جاری است حیات ایران مدیون فردوسی است آفرین شاد باشید خاصگاه فردوسی چی بود است خاصگاه فر اهل توسه در بعض از نوشته ها بودن عل پاژ بوده پاژ روستایی نزدیکی توس که الان هم هست متاسفانه این اصعات عزیب بعد حجموم روستاییان به شهرها تقریبااً یه نیمه خرابه ازش باقی گذاشته تعداد کمی در حقت اونجا ساکن داره اما یه دوستی گرامی که ما داریم و بنیاد فردوسی هست او حمد کرده که در یک هم یک آپارتمانی خرید و حریه کرد که بنیاد فردوسی باشه و بعد کم کم جلز برنامهاش اینه که در اون پاژ یک برنامه های پیاده کنه مثل مثلا زورخانه یا مثل بخشی نشان دادن داستانه شانومه به بچه ها برنامه در نظر داره امیدوارم که موفق بشه آقای دکتر توسیفند فردوسی با شاهنامش چه میخواسته برای ما بکرده؟ فیدوسی با شاهنامه میخواست بگه ایرانی خاک نشینی، خاک بس بلند شد سر تو برفراز به کهکشانها ها با آسمان ها خیلی من خود ببین در همه زمین ها آماده باش برای جهان آینده همطور که در گذشته تخت و پایتخت جهان بود ایران در آینده با حضور شما و تخت و پای تخت جهان باشه اینم به شما ارز کنم من در یک کتابی به نام حقوق جهان دریان رو باستان که چند سال هست چا... به چاپ ثبام رسیده در اونجا شر دادم اون, فره... اون فرهنگی که میتونه که رهنمود و رهنمای پریشانی های جهانیان آینده باشه فقط فرهنگی ایرانه اگر جهان بخواد که نجات بدخونه باید به سوی فرهنگی ایران بیاد و این کارها به از دان خواهد شد با تلفن های برنامه 222-485 222-588 20 222 558 20 و شماره پیامک 3558 3558, 3558. تماس بگیرید بسیاری از پیامک های شما آمده و تبریک بوده و ما سپاسگزاییم از شما تدایش هم سؤال بوده که من استاد گفتم این موقعا من به پیامک نگاه می از صحبتهای استاد قافل میشم. ببخشید باید این کارم انجام بدم و پیامک های شما رو آماده کنم و با توجه به موضوع برنامه برای استاد بخوانم از استادم از خواهی می کنم اصلا نگاه کردن شاید. به ایچیمون البته خب آره <تصفح> من مخاطبم مخاطب جان ایرانیانه ما می‌بینید که با ایرانیان سخن میگم این به من نیرو به طبان سیرتی که چابنامه فردوسی در ادبیات و فرهنگ ایرانی گذاشته استاد جلیلی البته همه شاعران تاثیر گرفتن بعد از او من که اون شعر انوری رو خوندم شما می‌بینید که سعدی که خداوند سخن حساب واقعا استاد همه شاعران دیگه شناخته شده او درباره فردوسی میگه که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر طربت تربت پاک باد میازار موری که دان کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است سیاهندگون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل این آیین ایرج بوده ایرج یعنی فروتن ایرانیان یعنی فروتن فروتنان به صفت انسان فروتن اینه که آزاده باشه اینه که به دو نام مورد خطاقار میگه یه یعنی آزادگان یکی ایران یعنی فروتنان آین ایرج بوده فروتنی بوده که آزار بر موری رو هم یعنی جایز نمی‌تونسته این از سعدی منتور شاهران دیگه همه یا نام بودن یا اگر نام نبودن اشاره به رویدادهای شاهنامه در سرتاسر ادبیات ایران هست و همه برگرفته از شاهنامه فردوسی سلام و شب بخیر من یکی از نیوشندگان برنامه زیبای رادیو فرهنگ هستم از جناب دکتر سپاسگزارم بفرمایید تفاوت سیمرغ در شاهنامه فردوسی در داستان زالوا سیمرغ داستان زالوا سیمرغ منطق تیر عطار چیست آیا سیمرغ شاهنامه همون سیمرغ اتار است سپاسگزارم محمد محمد حامدی راد استان هرمزگان شهرستان مینا شاد باشید درود به هرمزگان و امواجد آبی آرام دریای فارس این پرسش زمان میخواد که من اگه بخوام درباره سواد کنم سیمور در شاهنومه سه بار ظاهر میشه و سعی نه در عبستاب به عنی نماد پتشکیست و سه بار در شاهنومه ظاهر میشه یک بار در باره پذیرایی و دلقت پرورش زال یک بار درباره به دنیا آمدن رستم خوشبختان پنج روز من دکتر شامنصور داریم که از تاجکستان در اینجاست میگفت ما هنوز در تاجکستان نمیگیم سه میگیم رستمینه من سیصد پیش پیش نواز کردم بگیم رستم رستم زاد ولی خب اونو هنوز میگن رستمینه یکی در زایش رستم و در حقیقت رستمینه یا رستمزاد یکی درباره باره برمان رستم در تیرهایی که خورده بود میبینیم که به صورت پزشک ظاهر میشه اما سیمورق اتار یک بحث خیلی مفصله که من در کار کردم منتها وقت نمیشه که به اون عظمت بگیم اتار تحت تحصیل ایران از بزرگترین پرندهی که یاد شده که سیمرغ باشه یه شخصیت ساخته در جوانی اینم به شما بگم که این کار کار جوانی عطاره لابد شما با خودتون رو میگین که مثلا کسی که پنجه ساله باشه خب چطور ممکنه جوان باشه اما کسی که به سن صد و خوردهی سال دستید و در اشعار دیگه یه چهره جدید تازه از خودش نشون میده در پنجه سالگی شهست سالگی که این کار رو کرد برقیق جوان بوده و بعدن خود عطار این رو دفت کرده در وادی بی‌نهایت بی عشق سیمرغ به یک مگس نمی‌آید. خود اتار گفته. اما ما ایرانیان دنبال سیمرغ و هفت شهر رو اینا داریم جونفشانی میکنیم خود عطار نفت کرده ولی ما هنوز داریم این رو یعنی این همون جریاناتی اجتماعی که این جریانات اجتماعی کار خودش رو انجام میده دیگه بیشتر نمیتونم من میتونم یک ساعت درباره سیمرغ عطار و اندیشه‌های عطار صحبت کنم اما ایجاب نمی‌کنه دیگه بیشتر از جنیدی اندیشمند بزرگ حتی بیشتر با عبیات افسوده و باورهای نادرست درباره فردوسی آشنا می شویم بیشتر به عظمت راه شما پی می‌بریم. دوستداران شاهنامه فردوسی ویرایش شما همراه شما تلاش می کنند خانواده میرحقی از مشهد. شاد خانواده میرحقی امیدوارم که شما هم کانون های شانومخانی بگذارید اتفاقا که من پجروز خدمتون بودم در مشهد همین بنیاد فدوسی رو بادار کنید که انجامن ها شانومخانی بگذارن و از روی این ویروهش در هم بخونید یاری از روان فدوسی هم به شما یاری خواهد کرد چرا برنامه هایی برای کودکان در زمینی شانومخانی نیست؟ چه باید بکنید؟ پاسخ با من نیست من پیشتر گفتم اینو باید به خطور کنه به اندیشه آموز پرورش در سطوح پایین تر برای بچه ها بگذارن اون وقت نتیجه ببینن اون وقت ببینن که بچه ها چطور تربیت میشن و چطور آماده جانفشانی در راه میان خواهند شد چطور و چگونه می توانیم شاهنامه ویرایش استاد جنیدی را داشته باشیم و چگونه می توانیم این از پیامک تعدادی از پیامک از پیامک در این زمینه چطور می توانیم با بنیاد نیشابور ارتباط برقرار کنیم تلفن بنیاد نیشابور 88 96 27 84 دوباره میخونم 88 96 27 هشتادو چهار های شما آماده است یک به یک میشنویم و استاد پاسخ میگوییم با درود بر استاد ارجمند شاهنامه و گوینده گرامی برنامه و با شادباش روز بزرگداشت فردوسی بزرگ میخواستم از استاد خواهش کنم درباره تأثیر فردوسی و شاهنامه بر دیگر آثار حماسی و تاریخی بزرگ دنیا برای ما بفرمایند سپاس کیان است. دکتر کیانای عزیز شنواندگان نمیدونند که تو کوچولو بودی من به تو پهلاوی درس میدادم و حالا پزشک شدی خب به هر صدت روان اون در گذاشت شما بود. باد کسانی هی رفتن و در جهان قرب آموزش دیدن اکس این رو میگنن بسنم میگن که ایلیاد و اودیسه تاثیر گذاشته رو فلان دستند آشیل تصدیر رو راستان اسفندیار همه دارن عکس رو میگن هیچ فکر نکردن که اروپا 2800 سال تاریخ داره و این رویدادهایی هایی که در ایران بوده و در شانه هست اینا متعلق به روزگار های و زمنان اروپاییان به در مراحل مختلف مرتبن رفتن به مهاجرت و قاره اروپا رو تشکیل دادن اینا با خودشون این داستان ها رو بردن مثلا فرض کنید که خالقه مطلق گردواری خیلی, خیلی خیلی خوب کرده که داستان رستم و سهراب در اسکاندیناوی در اسکاتلند در کشورهای مختلف اروپا چه تأثیری گذاشته درست این چیزیه که تو گفتی تاثیر شاهنامه است بر دیگر که کشور های اروپایی که اروپا زدگان ما امروز اونو عکسش رو میگن پرمانی که اومده در, در این باره که شما در باره مصنوی در باره مولانا اشعار مولانا صحبت کردید برای کودکان گفتن گذاشتن کودکان اشعار مولانا رو نمیتونن تهم بفهمن متوجه بشن. من, من فکر, فکر خودمون دارم از میکنم توی پیامت که اومده من دارم جواب میدم اما مولوی مولانا اون هم قله بزرگی بر آسمان عدبیات ایران منطقه برای کودکان خوندن من فکر کنم درست نیست شاهنامه رو بچه ها خیلی بتر سبات برگرام میکنم شما پاسخ دادید بنده دخالت برای این پاسخ نمی کنم که نگفتم مولوی رو هیچ وچه یعنی هیچ کس رو در جهان نمیتونیم در پای فیضوسی بگذاریم این این خیلی خیلی داوری خیلی سختیه به هیچ روی و به هیچ وجه ما نمیتونیم هیچ کس رو با فیضوسی همتراز بکنیم اون چیزی هم که در مورد در مورد مولوی اومده اون داستانا خیلی سادم اند مثلا فرض کنید که اون کلی که که کل شده با با،, با کل میختی چیز مهمی نیست از این داستانا شما از ما مثلا ویدئویی توجه بچه‌ها رو جلب نمی‌کنه. چیزی که مهرانگیز به من گفت اینه. گفت من به توصیه مدیر کودکستان این کارو کردم و دیدم بچه‌ها به هیچ وجه توجه نمی‌کنه. من فریباز و صحبانی بستم از درش سی سی در دیمارسان قلب تهران پست دیم اینقدر این دکتر شنگ صحبت میکنه که من با این کسی های جان بازم زربانه, زربانه قلبم انقدر بالا رفته من از دکتر جانه دی واقعا تجربه میکنم به تاریخ این این مملکت رو به جوان ها شروعی ها سید با صفات از همه بازافه شاد باشی، آرزوی من بهروزی شماست با شاهنامه زندگی کنیم. این هیجان ها در حقیقت هیجان مهر ایرانه امیدوارم که توی همین هیجان ها خوب بشی و امیدوارم همه کسانی که در بیمارستان خوابیدن اینا همه با دل سپردن به داستان های نیاکان بهروزی و سلامت پیدا بکنن هرچی دور شما رو بیرون از بیمارستان ببینم با نام خداوند جان و خرد با درود بر استاد فرزانه فریدون جنیدی و با درود بر هدایتی عزیز استاد بزرگوار ما رستم رو با شاهنامه میشناسیم و ظاهراً به قول اساتید عزیز نام رستم در درخت آسوریک و در یادگار زریان هم به او اشاره شده علت چه در ادسا به رستم اشاره‌ای نشده علت اون رو استاد می‌خواستم توضیح بدم شاد باشید دیگران رو هم شاد کنید با شکی از تمسّل توجه به شماهای باشه که موضوع ابستا و دفترهای مختلف ابستا فرق میکنه با تاریخ. بنابراین داستان دسته نرستند در اونجا نیمده. اما نام رستند در یک رساله سالهای کوتاهی. به نام ماه فروردین روز خورداد اومده که در اونجا اشاره شده که ما همانند رستن بتونیم که بر پای خیزیم و کشور رو نجات بدیم و اما شما باید بدونید از انبوه انبوه انبوه, انبوه نوشته های باستان ایران چیزی به دست ما نرسیده که بتونیم الان یه داوری کلی بکنیم که در این نوشته ها نام رستن هست در اون نوشته ها نیست اگر اون کتاب ها و اون انبوه کتاب ها و نوشته ها از دست نمی رفت ما می‌دیدیم که به جز از شاهنامه در جای دیگه هم از رستم سخن رفته داوری بسیار شیرین است و خیلی خوشم میاد از این ترس و احترامی که شما دارید نسبت به استاد جونیدی وقتی تلفن میخوانید ایشان میگویند چه مرده شما چه مرده تر میخوانید یعقوبی از گیلان تلفون های بنیاد نشابور رو خواستید بسیاری از شما عزیزان که من آماده نبوده کاغذ و قلم ها رو آماده کنید عرض میکنم هشتاد و هشت نود و شش بیست و هفت هشتاد و چهار بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد بزرگ شاهنامه و مجری محترم جانب روز فردوسی را به استاد عزیز همه هموطنان و فارسی زبانان تبریک میگویم سید حسین صالحی قهفر از چار محال و وقتیاری. به قهفر روخ و قهفر روخیان درود به چهار محال درود به بختیاری و من فردا آزم اسفان هستم که بعد از اون برم به شهرکرد روز قشف فردا در دانشگاه شهرکرد بموید خدا خدمت بختیاریان و چهار محالیان میرسم شاد باشید با درود روز من گرامیداشت فردوسی را به استاد نیدام مجره محترم و همه شنوندگان ایرانیان دوستدار فردوسی تبریک می‌گویم. یک سال باشه استاد. روز ماندگاری و رسام در که چه است با تشکر، امین ترسا عالی هستم از برگزارکننده. چون روز اجلش و شتاب بخار جادید من بهت گفته بودم که آرام تر ثابت کن راز مندگاری داستان رستان سوراب همینه که برای دفاع از ایران و پادر ایران یک پدری یک دفاع میکنه و یک جوانی رو از جهان یعنی کشته میشه که به دست او که بعد معلوم شد اون فرزندشه. خب این خیلی رویداد خیلی عجیبیه و به یاد فرزندان ایران باقی ممونه بعد از این فرزندان ایران یاد بگیرن که برابر ایران نعیشتند. با امیدی هستان. از آقای هدایتی تشکر کنم و همچنین از استاد عزیزم آقای فریدون جنیدی. و ازشون سؤال کنین که این نسخه های شاهنامه که در دستش ما هست در بازار موجوده چقدر به نسخه اصلی نزدیکه؟ اشوری اسم از مازندران شما درد نکنه درود بر شما و درود بر مازندران با اون امواج آرام و آبی دریای کاسپین مازندران تبرستان، گیلان و هیرکانیان در این نسخه ابيات شانه هست منتها ابيات اسودان بسیار است و اینی که خاننده در حقیق گیج میشه که این کدومی که از اینا چون همه که نمیتونه تستش ببین من با 27 سنجه و با یک عمر مطالعه روی ادبیات و فرهنگ و ایرانی اینا رو اصلا جدا کردم خاننده معمولی گیج میشه درست که مفهوم رو در رو با مخالف رو به فاصله دو تا بیت میتونه مثلا من به شما بگم خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رهنما این افرود است در بیت دوم شاهنامه چرا افرود است؟ برای که خداوند جای یعنی چی؟ خداوند نام یعنی چی؟ اگر شما میخواد بدونید که فردوسی چی گفت؟ فردوسی در بیت چا... پنجم میفرماد که زنام و نشان و گمان برتر است اه... نگاراندهی است خوب. این فلسفی میگه خداوند از نام و نشان و گمان برتر هست چطور ممکنه بگه که خداوند نام خداوند جای همه مردمم هم بیچاره میخونن و بیت دوم شاهنامه هست من کار آسان کردم دیگه شما با امید خدا اگر این شاهنامه رو بخونید میبینید که گفتارهای ویدوسی جداست و گفتارهای مخصوصی ریشتر چاپ شده دلیلیش هم هست شاهنامه که ویرایش استاد جنیدی هست با بنیاد نشاغوت اون میتونید تماس بگیرید 88 نوید و شش بیست و شاد باشید پیروز باشید روز ایرانیان فرخونده با یاد فیدرستی و با یاد اون بزرگانی که در کار شاهنامه نامشون رو بردن و در کار شاهنامه کوشش کردن با یاد اون نیاکان خردمندی که با مجموعه کردارهای خودشون شاهنامه رو به این عظمت برای ما بر جای گذاشتند. سپاس گزارم از شما شنوندگان عزیز شب بر شما خوش ایرانیان هست